ما درس سهر در ره میخان نهادی محصول دعا در ره جانان نهادی در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این دا که ما بر دل دیوان نهادی سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادی در دل ندهم ره پس از این مهر بوتان را مهر لب او بر در این خانن عادی در خرقه از این بیش منافق نتوان بود بنیاد از این شیوه رندان نهادی چون میرود این کشتی سرگشت که آخر جان در سر آن گوهر هر یک دهان نهادی المنه لله که چون ما بی دل و دین بود آن را که لقب عاقل و فرزان نه قانع به خیال ز تو بودیم چو حافظ یارب رب چه گدا همت و بیوان نه